گاهی اعضای خانواده این از نعمت‌های الهی است که با هم هماهنگ باشند از نعمت‌هاست که یک عاملش دقت در انتخاب همسره اگر در موقع انتخاب همسر این دقتها صورت بگیره اینکه گفتن کف انتخاب کنید وقتی اینها اگر خدایی نکرده مرحله ازدواج درست نبود بعد از ازدواج وقت بگذارن یکی از کارهای اصلی اینه که زن و شوهر این که قرآن میگه لباس هم دیگه هستن لباس پوششه که انسان رو از اون اموری که بنا نیست آشکار بشه یعنی ایوب رو محفوظ کنه یا از گرما و سرما محفوظ بداره زن و شوهر باید برای هم دیگه اینجوری باشن راستی یک زن گاهی ممکنه شیوه شیوه غیر تمسک به اولیای الهی باشه میخواد اقدش رو خالی کنه میخواد فعلا سرکوفت بزنه میخواد فعلا نوعی آزار بده این امرو معروف نیست این تذکر نیست این تبلیغ نیست این ارشاد نیست این ادایت نیست اما واقعا برای رضای خدا میخواد زن به شوهرش بگی من نماز رو خدا گفته با. شما تو نمازت سوسی حیف نیست نمیخوای تعالی پیدا کنی ما اومدیم دنیا بخوریم و بخوابیم برای این اومدیم یا اومدیم تو دنیا که از دنیا خارج بشیم این امیر المؤمنینی که ما دم از رو میزنیم نحجل چه میفرماید الا این اولیاء الله اولیاء الهی چه کسانی هستند همون لذین نظرو الى باطن دنیا از نظر الناس الى و وشتغلو به آجله ها تقل ناس به آجله ها همین یه دونه از نهجل بلاغه من عقیده همه تو میدونی راست میگم همین یه دونه تو نهجل بلاغه را اگه من باور کرده باشم و عمل کنم میرسم به جایی که باید برسم علی میفرماید این اولیاء الله این نه برای چیه؟ تأکید همانا معکدن جدیه شوخی نمی‌کنم دارم جدی میگم ها بدانید این جوری سا الله اونایی که به مقام اولیا می میرسن هم اللذین اون کسانی هستند نظرو الا باطن دنیا این ظاهر رو نمیبینه باطن عالم رو نگاه میکنه وقتی نگاه به باطن عالم میکنه و به بعاجله ها عاجل با الف یعنی آینده دو یعنی قیامت یعنی فردا یعنی اون چی که در اون عالم براش هست اونجا رو نگاه میکنه ازش ناس الناس به عاجل ها وقتی که عموم مردم همین مرحله رو میبینه فعلا پستی فعلا مقامی فعلا پولی فعلا خونه ای فعلا اتومبیلی فعلا خوشگذرانی، اما اگر او میخواد به اون درجه اولیای الهی که برای مادون معصومین مقرر شده برسه هرچی براش مطرح میشه باید بررسی کنه آیا این کار؟ آیا این لغمه؟ آیا این شغل؟ آیا این پول؟ مرا از اونها جدا میکند یا نزدیک میکنه؟ الا ان اولیا الله چنین و چنانه خب در مرحله خانوادگی اگه اعضا اینجوری به هم دیگه تذکر بدن این تمسک رو قوی کنند با یکدیگر، چه بسا زمینه رشد خانوادگی هم ایجاد بشه